الکسل یا دروب دین و دنیا الکسل یا دروب و دنیا بحث ما چیه؟ تمبلی تمبلی ضرر میزنه به دین و دنیا تمبلی ضرر میزنه به دین و دنیا آدم که تنبل هستش هم به دینش ضرر میزنه به آخرتش ضرر میزنه همچی به دنیاش کسی که تنبل هستش هیچ موقع تو زندگی موفق نمیشه برای موفقیت باید همت داشته باشه تصمیم بگیره تلاش کنه تا به اون هدفش برسه